بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد بعضهم ادامه بحث بسراب مع رجل دارين خانوزين بحث ممنشد ساعدم يقولون إن شاء الله وإن شاء الله بده أن بده من توفيق بدا أمري بدا وفرده بواقيف وشي ساعدم إما بحث خاتمه بدیم. چون هفته آینده من نیستم، دیگرالا هفته بعدش اگر بخوام آغاز بکنیم ببینیم انشاءالله خداوند چه توفیق میدهد و چطور که در خدمت شما باشیماره یک شب یا دو شب تا دو هفته دیگر انشاءالله وقتی که ما شروع کردیم وقت سیرت مصطفی صلی الله علیه وسلم اون چیزی که رسول الله صلی اللہ علیه و سلم در طول حیاتش در مکه و مدینه گذارانده در بحث هفته گذشته بحث فطرت رو داشتیم. بحث آن شیری که به رسول الله صلی اللہ علیه و وسلم داده میشه همراه با مشروب و عسل که یکی از اینها یکی از رو انتخاب بکنه، و رسول الله صلی الله علیه و وسلم شیر را انتخاب میکند و جبرئیل به ایشان میگوید فطرت را انتخاب کردی برای خودت و امتت. انصال های مؤمنی که صادقه رسول الله صلی الله علیه و سلم در قول و قوی در رفتار در کردارشون در اعمالشون باشن روی فترت روی اون چیزی که خداوند از انسانها خواسته خیلی عزیزان من هفته گذشته وقت نکردم که بگم در بحث فترت من گفتم فترت اون چیزی هست که خداوند در ذات انسان نهاده و گذاشته تا این که انسان خوب و بد بده تا این که الله را بشناسه در خودش احساس نیاز به الله بکنه و خداوندم مثال های زیادی میزند و می اگر شما را در در مثلا در کشتی رو گذاریم و در شین غرف شدن باشید دست بیتی بلند میگونید غیر, غیر از الله کسی میشناتید اصلا پایش امتحان بکنه سوار قایقی بشه در یک موجی خارج بشه غیر از الله کسی میشناتید ازاده یا فلانی یا ولی میفته می اونجا هست که فقط میگیاد ارحم الراحیمین و میگوید قادر بر کلشه من تو را میکاهم انسان وقتی که یک درری یک مشکلی گیر می کند مثلا به س ماشین خراب شده باشه و در کنارش موتوری باشه و ماشینی هیچ وقت نمیاد که از موتور استفاده بکنه برای که مثلا ماشینش رو گل بکنه دنبال یک ماشین قوی هست که بتونه این ماشین رو تحمل بکنه. انسان ها در سختی ها چنینه دنبال یک قدرت بزرگی هست که اون را در تمامی جاها نجات بده و حرف روطخان را بشند. و غیر از الله هم هیچ کس این چنین قدرتی نداره هیچ کس سمیع و بصیر مثل الله نیست خداوند هیچ چیز ازش مخفی و پنهان باقی نمی‌مونه از ذل ما از اون چیزی که در خاطر مول اون چیزی که حتی تا یک رسول صلی الله علیه و سلم می مورچه یییده سیاه رنگ در دریا در دریه در تاریک روی سنگ سیاه اونم خداوند میبینه چیزی از خداوند پنهان باقی نمی‌مونه این این تمام بی‌نهایت الله بحث برمیگردیم به اصل فترات که خداوند در انسان گذاشته. دو خیلی از چیزا هستم خود انسان که نیازی مثلا بالفرد کسی بهمون همون بگوید این کار نکن که بد، این کار بکن که خوبه اصلا در نفس خودش میدونه تشکیل بده مثلا بالفرد مثال من یک مثالی بهتون میزنم. پدرم هیچ وقت میم نگفته که مشروب حرامه و نه. آیا من مؤمنی که نماز کنم میام در این صفا مییستم رو میشه اینجا مشروب بذارم بخورم در عقل انسان تو چه چه چه نیاز هست که در قرآن بگه که مشروب حرام نه انسان در نفس خودش میدون این کار زشته ایور یا سیار بلطی من سیاری رو بگم تو دهنم بذارم مثلا به خاطر اینجا بکشم زشت نیست نیازی نیست که مثلا به فز بگیم اینجا آیه قرآن است اینجا حدیث است این حرامه بخاطر خاطر همینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایان الاسم ما حاکه في و کرهدن یطل علیه الناس گناه اون چیزی هست که در نفس خودت احساس میکنی که بده و دوست نداری مردم او را ببینن این گناه که زشتت میشه جلوه مردم اون را اجرا بکنی و اون انسان بهش عمل بکنه خیلی چیزا هست هیچی که از ما نداره که با تنی برهنه بیا در خیابان راه بره دیوانش هم دوست نداره همون دیوانش این فطرتی این فترتی که خداون در انسان گذاشته خب ادامه ی پشتیم. الله صلی الله عليه و گفتیم از آسمان اول شروع میکنه و همچنان به بالا میره. از آدم علیه السلام. بیش گفتیم یشیر رسول الله صلی الله عليه و سلم اینکه پدرته بیش سلامی بکن سلام میبکند، سلام میکنه، جوابش میدهد، ای فرزندم، سلام بر فرزندم، بر پیامبر خدا هست. آسمان دوم یاد نرقت میکنه با عیسی علیه السلام و یحیی. و سلامی می و جواب سلامش میدهند در آسمان دوم در آسمان سوم با یوسف علیه السلام ملاقات میکنه در صلی الله علیه و سلام میگه کسی زیباتر از یوسف را ندیدم در آسمان چهارم با ادریس ملاقات میکنه علیه السلام جواب سلامش را میدهند در آسمان پنجم با حارون ملاقات میکند و همچنین با موسی علیه السلام در آسمان شیشان ملاقات میکند تا اینکه وقتی که به ندز موسا می علیه السلام که بهش سلام بکند می مرحبا دکه من اخن و نبی سلام بر برادر و پیانبر خدا بند وقتی که رسول الله صلی اللہ علیه و بهش خوش دادم رفتم می رفتم جلو دینم که موسی علیه السلام گریه می کند گفته شد که چرا گریه می کند رسول می گفتم چرا گریه می کند گفت که خود موسی چنین نین می گوید قال يا رب هذا الغلام الذي بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر وأفضل مما يدخل, مما يدخل من أمتي. كيف أربع دقارة أذ إن شفت كيف محمد صلى الله عليه وسلم كثاني بشترد أمته من ورد بهش بشبان بشبان بي. يعني تعداد بسيار, بسيار زياد أذ أمته محمد صلى الله عليه وسلم ورد بهش بشبان تو إنك ميايات بأرسامونها قنبا بي. مراقات می کند با ابراهیم ابراهیم جواب سلامش را میدهد، و بهش می خوش آمد می گوید می گوید فرزندم خوش آمدید فرزندم و پیانبر خدا بند چون رسول الله صلی الله علیه وسلم از نسل اسماعیل از فرزندان ابراهیم هست می تا جایی که من رسیدم به بیت المعمور دوم روخ عیره ید المعمور فسال تو جبریر علیه السلام وقال ها در بیت المعمور میگوید که رفتیم به... رفتیم به بیت المعمور بعد میگه سوال کردم اینجا کجاست؟ این چیه اینجا؟ گفت که اینجا بیت المعمور است که در این مسجد در اینجا در این خانه روزانه هفتاد هزار فرشده می آیند نماز می خوانند هفتاد هزار می آیند نماز می خوانند بعد بر می گردند بیرون می روند و دیگر اونهای افتاد هزار نفری که اومدن دیگر باز نمی گردند هر روز افتاد هزار فرشته می آیند و در این مکان مقدس برای خداون نماز می خوانند چی می قاعد بگوید این رسول صلی اللہ علیه و سلم خصوصا اینکه بعد از این مسئله یک مسئله بسیار مهمی می آیند رسول الله صلی الله علیه و سلم می قاعد اینو می نیازی به نمازهای من و شما ندارد مننت بر سر خدا نظرید شمایید که نیاز دارید چرا نیاز دارید؟ چون این نماز سبب میشه که انسان از بحشا و منکر دور بشه تا مسلم حقیقی باشه مسلمی که خدا و مسلمانی که خدا او را دوست داشته و دوست دارد که اونچنان بندش را ببیند اینه صلاح تنها عن البحشا و المنکر بدرستی که نماز انسان از بحشا و منکر دور میکنه. بعد فرشتگانی که می روزانه افخاد هزار نفر میان نمازشون رو می خونن ادا می بعد بر می و دوباره بار دیگر به اینجا باز نخواهند گشت بعد می گوید تا جایی که بعد دیگر رسیدن به صدرت المنتحا به آخرین درستی که الان می گوید مثل قلال می میگه که اون کناری که این درخت های کنار داشت اون درخت سر مثل خوزه های های بزرگ خوزه های بزرگ این چیزی تشبیح می کنه رسول الله صلی اللہ علیه سلم و اید ورقها مثل آذان الفیل و برعوراق و برگهای اون درخت مثل گوشهای فیل یعنی خیلی درخت عظیم و بزرگ و گفته شد که این صدت المنته و از اونجا چهار تا رود جاری می شود دو تا رود باطن و دو تا رود ظاهر دو تا باطنش دوتا رودهای باطنی اینکه هستن که به جنت سرادیر میشوند از همونجا از آسمان علا و دوتا رودهای ظاهر که فرات و نیل هست شاید انسان در ذهن خود استثور بکنه زمین که کربی شکل هست دایر است. اینجا هم ما داریم که اشتقاق رود نیل و رود فرات از آسمان ها و از فضاق چطوره و چگونه هست ما در این مسائل غیبی همونطور که ابو بکر ستیغ میگوید این کان قد خالها فقد اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم دوکت ما مابا وارد بین چشم ما ماه این چیزی ندیده باشد و در تصور انسان نیاید خیلی چیزها هست که انسان شاید در تصورش نگنجد مثلا همین نوری که ما میبینی این لامپی که هست در این مساجدی ما میبینی فرشته هم نوره ما این نور فقط میشناپیم رسول الله صلی الله علیه و می بی بیاد من جبرائیل، جبرائیلی که از نیو خلقت شده بی بیاد که من جبرائیل را دیدم و شدت تا با بال داشت. تو ذهن انسان خودش تصور بکنه این نور بال داشته باشه. تو ذهن انسان میگنجد؟ غیر قابل تصووره. انسان نادیده، انسان محدوده. نمیگونه این مسائل روش قیاس بگیریم. این مسائل فراتر از ذهن و درک ماست. خیلی ما محد محدودیم. خیلی ما یعنی این همه مخلوقات خداوند چیزی به حساب نمیایید. وق خب. صحیح که رسول صلی الله علیه و سلم در آنجا ندا زده می‌شود که بر تو ای امت محمد ای محمد و امتت پنجاه نماز پنجاه بعد نماز فرشود. پنجاه بعد نماز. این مسئله اینجا فرضیت نماز در آسمان‌ها، آسمان هفتون آسمان بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نشانه این است که نماز اهمیت بسیار زیادی نزد الله دارد. به همین که رسول الله صلی الله علیه و را از این زمین از بیت المقدس از, ب... از مسجد الحرام به بیت المقدس میبرد و از اونجا به آسمون ها حدث چیه؟ که نماز فرض بشه باز دیگر پیامبران مراقبت رسول الله صلی الله علیه و سلام خیلی مسئله بزرگی هست که برعکس به بالاترین جا مگر نمیشد که جبرئیل فرستاده بشه مگر نمیشد که وحی بکنه در خوابی ببیند چرا رسول الله صلی الله علیه و از خانه اش به آسمون ها تا در آنجا گفته شود ای محمد باید تو و امتت پنجاه بعد نماز بکنی خیلی مسئله بسیار مهم است خوش که دیگه رسول الله صلی اللہ علیه وسلم بین الرجل و بین شرکی ترک و صلاح ثمانی بین یک شخص مؤمن، یک شخص کافر نماز کسی که نماز ها بکند ترک بکند کافر شده فرقی با کافر ندارد خیلی مسئله بسیار بزرگی هست که متاسفانه جامعمون چنینینه حالا خداوند این رو ببخشه این کسانی که اهل مسجد نیستن و اهل نماز نیستن رو به تخیر میندازن بغض این نمازش خیلی ها داشته باشن هیچ وقت انسان تلف میکنه و فلان و فلان که خداوند اینقدر این محبت این نماز رو دارد که در آسمان هفتون بر رسول الله صلی الله علیه و سنت حق میکنه نمازی که خداوند براش مسجد رو انتخاب کرده نمازی که خداوند نگاه اون نماز بوداران می کند نگاه نمازی که خدابن منتجر است سخنان بنده اش قرآنی که تلاوت می کند سر این نماز بشنود لیکن بنده اش جوز ندارد سخن الله را سر این نماز تلاوت بکند و با الله حرف بزند چقدر بنده آسی هست چقدر بنده کفران نعمت می کند این بزرگترین کفران نعمت هست که الله از انسان یه چیزی بخواهد الله تلاب و درخواست بکند و برش و بزرگترین شخص بشر بالاترین و خیل البشر را ببرستد و اون با بزرگترین معجده و در بالاترین جا برش فرض بکنه بعد این امت بیاید پشت به بی این نماز بدهد قدر این نماز رو نتوند نماز توش بخواب نماز ظهرش در مغازش حاضر نیست در مغازش رو ببنده این امت اسلامه امتی که قدر این اسلامش قدر این پیامبری که برای شده قبر این قدر این ساعت ها و عبادت ها رو نمیدونه رسول الله صلی الله علیه و سلام اورضو داشتن که به نماز بیستن رحنا به بها راحتمون بلال زود نماز و اقامه بکن تا به نماز بیستیم بریم با خداوند صحبت بگوییم ازار مؤمن جلیله مشتاق که پسر امام بیزی نماز طولانی بخوند از کلام الله بشنود لیک ما ها که کی این نماز الحمد که شروع میشه رفت مغازه این کار بکنم اون کار بکنم کجاست شبه نماز؟ ما چی کم داریم؟ ما مشکلمون در کجاست؟ این علامت استفاه ما رو در جلو به خودمون علامت سال چی کم داریم ما؟ چرا این مشکل داریم؟ چرا در نماز ما راحت نیستیم چرا نمیخوایم با خدا ما راحت باشیم؟ چرا نمیخواهم درست به نماز بیسیم؟ همش مشکل من گفتم به یک جا برمیگردن اون چیزی که قلب را باز می کند اون چیزی که مشکل انسان‌ها را باز می کند همین قرآن الله هست این قرآنی که معجزه دائمه از 1400 سال پیش تا وقتی که قیامت در بگذاره این قرآن هست با این حجت بر بشر ادیا یا این کسار نجات می دهد یا این کسارو وارد جهنم می کند این قرآن کلید تمامی مشکلاته افرادی یتدبرون القرآن ام على قلوب اخوالها آیا نمی قرآن را در بکنند بلکه در قرآنو در بکنند تمامی مشکلات امت اسلام حل می شود اما على قلوب اخوالها یا اینکه قلبها قرش شده اگر قرآن نمی توانیم تدبر بکنیم بدونیم که قلب ما شده درد بس در قرآن باز بگوییم فهم قرآن با فهم قرآن باز میکنیم کریم با و در قرآن با حب این قرآن خوندن تفسیر دنبال معانی قرآن بودن این مسائلی هست که خداوند نزدمون خواسته تا این که ما خودمون رو اصلاح بکنیم رسول الله صلی الله علیه و سلام می‌فرمایند بر من پنجاه وجب نماز نازل شد فرض شد میگه که برگشتن اومدم به نزد موسا در حین نزوله با موسی علیه السلام ملاقات کرد. موسی علیه السلام شیدو، ای محمد، من بنی اطیلم تهم کردم. تحمل نداشتن، تحمل این چنین تو و عبادت نذاندن. 50 بعد, بعد در روز به نماز میاییده. یعنی در هر ساعت دو بعده. در هر ساعت دو بعده، هر نیم ساعت یک نماز، هر ناتری نیم ساعت یک نماز. بعد الله صلی علیه بعد الله علیه، بس وقتی که چینی ناز میتا میشه، بعد برمیگردد به نزد الله. از الله جل شأنه درقسم كناد كنماض تخفد هذه يقول قالت رجعت إلى ربي عز وجل فسألته أن يخفف عني فجعلها أربعين بس بضمن خاص أن كنماض ربنا تخفيف هذه كل نماض هذا الله در رواياتي جاء يوم دات كثنى ما سبقت عشرة در رواياتي يوم دات إن مسألة نهبه رضى رسل الله صلى الله عليه وسلم تكرار مش بس الحاضر إصرار رسلك إين نمازها تخبیف داده بشه هم. داده شود برمیگرده تا اینکه در نهمین بار وقتی که میرسد به پنجدار موسا علیه السلام بادم اون مقالش و اون حرف و سخنهاش تکرار میکند رسول الله صلی الله علیه و وسلم وقتی که اینجای نصلا رو از موسا میبیند میبید این موسا اینی از سحی من ربی عز و جل من کم ارجعه از این رجوع زیاد و تکرار من اصرار من دیگه شرم شرم شرم, شرم میشه که دوباره بر برداگردم به نزد الله همین پنج هم کم بکنه لیکن من دیگه همین پنج ازش راضی هستم و تسلیم میشم والا که الارض و اسلم لیکن وقتی که من اینجوری گفتم رسول الله علیه و سلام بیویت ندایی زده شد یا در روایت که نادم منادین ان قد امضیت فریبه خداون ندا میزند اتدا میزند که من این فرض قدم را بر شما اتمام کردم دیگه از پنجتا کمتر نمیشه و خصفت توان عبادی که اونجایی که جا بود بر امتم تخلیف دادم و اجدی بالحسنه دی عشر ها و در مقابل هر حسنه در برابر حسنات خواهم داد یعنی این پنجمازمون مثل پنجاه نمادی هست و قدامنز از ما قاسه این چیزی فاضاش هایی برای امتی اسلام گذاشته هرچند که در روایت دیگر بحث های دیگری آمده است از همین مسئله و اونم این که رسول الله صلی الله علیه و سلام می و من فلم يعملها در انتهای حدیث چنین آمده است از حدیث و فلم يعملها كتبت له حسنه کسی که یک کار نیکی را انجام دهد و انجام دهد برایش یک نیکی نوشته می شود انسان خصی یک کاری خیلی رو کرد خصی که نمازی به از دنیا برود اون شق با وجود که نماز نفانده ولی که پاداش اون نیت رو دارد و اگر اون عمل را انجام داد مثل اینکه که بار اون عمل را انجام داده و من هم فلم يعملها لم که گناهی را انجام بدهد انجام نداد گناهی نوشته که این عملها كتبت گناهی انجام داد یک نوشته می شود این مباحث خلاصه هست از بحث و معراج در این در سرا خاتمه می‌دیم و سخنمون رو به پایان می‌دیم تا اینکه خداوند دوباره تو پیجی بدهد در قدمت شما باشیم سبحانه کرمه و محمده سبحانه و محمده از و الیک و صلی الله علی محمده و صلی اللہ علی